الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المحسومین لاصی ما بقیت الله في الارزین اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <coughs> السلام عليك يا يوحنا و رحمت الله و بركاته السلام علی الائمة الحاضین المهدیین، السلام علی جمیع انبیاء الله و رسوله و اجمعین، السلام علينا و علی عباد الله الصالحین، السلام علی علي امیر المؤمنین، السلام على السدیقت الشهید، السلام علی الحسن و الحسین. سیدای شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین السلام علی جعفر ابن محمد الصادر السلام علی موسى ابن جعفر الکاظم السلام علی علی ابن موسی رضا السلام علی محمد ابن علی الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم اللهم كن وليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فی هازه الساعة و فی ساعة ولی و حافظ و ودليلا و مناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها تبیلا اللهم عجل لولی الفرج و اجعلنا من و اعبانه عوض بالله من الشیطان الرجیم و اذا سأل که عبادی انی فا انی غریب و عجیب و دعوتت داعه اذا دعان فلیستجیبو لی ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون آیه شریفه 186 از سوره مبارکه بقره خب هفته گذشته به مناسبت شام قدیر بحثمون رو در رابطه با این آیه قد کردیم حق هم همون بود و وعده دادم که امشب به عنوان آخرین شب جمعه در واقع این ایام و قبل از ماه محرم این آیه رو دیگه جنبندی کنم برنامه از هفته آینده به مناسبت محرم رو انشاءالله آخر جلسه عرض خواهم کرد لذا امشب ولو اون هایی که در رابطه با این آیه شریفه به خصوص در روایاتی که از معصومین علیه السلام داریم که قسمتیش رو موفق شدیم بحث کردیم بخوایم ادامه بدیم هنوز یای بحث خیلی داره ولی اجازه بدید دیگه محرم در پیش از خوبرنامه ها هم تغییر میکنه من امشب جمبندی کنم در حد همین نمیدونم 7 یا 6 یا 8 جلسه شد ظاهرا این آیه شریفه فیلن کافی باشه انشالله بعد از ماه محرم و شروع جلسات بعد از تعطیلات نوروزی ادامه آیات رو اگر خدا توفیقی داد پیخواهیم گرست الله. خلاصه حرفا این بود که ازا سعلا که عبادی انی وقتی که عباد من بندگان من از توی رسول انی از من سوال میکنم خب اگر ما به ظاهر همین قسمت آیه شریفه توجه کنیم بحث ها گذشت فقط یادآوری آوری ارزم کنم این انی یعنی وجود من صفات من افعال من انایات من در حق بندگانم ام ازا سالکه عبادی انی از من ولی شعن نزول آیه شریفه و روایاتی که در تاریخ در خصوص این آیه از معصومین علیهم السلام به ما رسیده مشخص میکنه که بحث در خصوص فعل خدا یا این صفت پروردگار در رابطه با بندگانی که دعا میکنن و خدا را میخانن در این رابطه است مثلا شما یک زمان راجع به خدا سوال دارید که من اگر بخواهم اثبات وجود خدا کنم از راهی عقلی یا قلبی عقلی وارد بشم با برهان انی یا لمی یا رها کذا اینا یه جور راجب خدا بحثه یه وقت میگید میخوام راجب خدا سوال کنم رحمت خدا چقدره انایت پروردگار چجوریه خداوند وقتی به بندگان افاظه میفرماید بر مبنای حکمت و عدالتشه یا من اینا بحثایی هست در رابطه با خداست یه وقت سوال می‌فرمایید خداوند سنتی دارد برای هدایت ما پیغمبر و امام قرار می‌دهد آیا هدایت از طریق دیگری هم میشد یا نمیشد؟ اگر میشد چرا خداوند این طریق رو قرار داد <تصفح> و اگر این طریق رو قرار داده پس خدا این رو بهترین در عالم پسندیده ما میتونیم بفهمیم چرا یا اینا همش میتونه امنی باشه اما در اینجا مورد اینا نیست وقتی میگه ما در مورد ای پیغمبر از تو در مورد من سوال میکنن هم ادامه آیه که طعنی غریب و و دعوت دعاء ازا دعان صحبت داع و دعان مطرحه کسی دعا میکنه خدا را میخواد به در خانه خدا به عنوان دعا کننده میرود این داره سوال میکنه من خدا در رابطه با من و دعا مسئله چگونه است بسیار اون بحثایی که گذشت خلاصش این شد که آیه شریفه به ما توجه میده و روایات که یکی از بهترین و ارزنده ترین کاری که ما بندگان به عنوان انسان در این عالم وجود در عمرمون میتونیم انجام بدیم و ارزنده هست مسئله دعاست چرا؟ بحث های مفصلی شد خلاصه اون بحث میشه که در دعا رابطه با خدا قوی میشود چقدر رابطه با خدا ارزش داره دعا رابطه شما را با خدا قوی می کند. دعا باعث می شود در اثر ارتباط با پروردگار عالم احساس پشتوانه قوی متقن و اتصال به مبدع قدرت داشته باشید این خودش ارزش هم روایات می گفم عدله نشون داد دعا حال و هوای عالم معنوی به ما میده انسان تو چه آلمی سیر میکنه الان یه لحظه شما امروز صبح تا رو در نظر بگیرید یا هفته ای که پشت سر از شنبه تا این لحظه رو در نظر بگیرید لحظه های مختلفی ممکنه داشتید گاهی حال و هوا حال و هوای و گریه و دعا و مناجات و سوز و گداز و یا الله گفتن بود گاهی خدایی نکرده حتی نماز میخواستیم بخونیم دهن دره می‌کردیم همیازه میکشیدیم حال اینکه این نماز راه آدم یه جوری بخونه مثلا نبود گاهی میدیدیم اگه چهار نفر با ما بشینن انشالله نداشتیم این هفته غیبت کنن حرفای شکم و شهوت بزنن کیف میکنیم خوشمون میاد حال هوامون حال هوای این بود اما گاهی میدیدیم نه وقتی توی جمع صحبت از شکم و شهوت میشه یا صحبت از غیبتو می‌سی که چه میشم بدن میاد و عکس الان دوست داشتم یه حدیثی برام بخونن یه آیه بخونن یه شعر معنوی خونده بشه یک جملهی یه کمی مثل که بال لر بیارم حال هوای انسان در این دنیا چه حال هواییه اگر گفتن هرگه صحبت حاضر قائف شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است و از برون در بازارم و از درون خلوتیس بایارم آشنایان ره عشق در این بحر عمیق قرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده اینا حالات انسانه که میتونه داشته باشه و ما با ادله بسیار به این مطلب رسیدیم که بهترین حال و هوا حال و هوای در عالم معنی سیر ولو در ماده ایم. ولو در این ملکیم اما ارتباطمون ارتباط معنوی و ملکوتی باشه حال و هوا حال و هوای دیگر باشه مثلا از باب نمونه میدید کنار یک مغازه تابلو فروشی یا یک خطاط خطی نوشته توی تابلو توی ویترین مغازش گذاشته برای فروش یک زمان حال و هوا و ذوق اینه بدم نیست اینی که الان میخوام بگم ولی مقایسه کنیم با بهترش یک زمان حال و هوا و ذوق اینه این قاب عجب چوب قشنگه عجب رنگای زیبایی داره عجب مثلا منبتکاری های زیبایی داره عجب این خط و هنر خطاطی زیباس حال و هوا این یک ساعت، دو ساعت کمتر بیشتر به اختزای ذوق اون تماشا کننده. واسطاده داره این قاب رو نگاه میکنه. این خط رو نگاه میکنه و تفسیر میکنه. لذت میبره و برای دیگری بیان میکنه. یه وقت هست کنار این ویترین مغازه ایستاده از پشت شیشه نگاه به این قاب میندازه. عشق داره از چشماش میاد. رنگش هم حیالاً تغییر کرده میگه یه حال هوای ای داره میگه چیه میگه این شعر داره منو آتش میزنه داره منو میشوزونه نمیگه شعرش حالا اتفاقاً خط قشنگم نباشه یه بد نوشته قابش هم حالا یه چوب برداشته یه مقداری مثلا هنچین هنرمندی تو این قابم انجام نداده نه زیبایی قاب نظر شما رو میگیره نه هنر خطاطی نظر شما معنایی که از این شعر دارید به دست میارید چنان شما را منقلب کرده رنگتون تغییر میکنه اشک از چشمتون میریزه حتی ممکنه شعرم از نظر وزن و قافیه و هنر شاعری خیلی جالب نباشه پشتی بانتی دیدم و گاهی زوغایی به کار میبره مثلا نوشته بود که در کشتی بلا گر نگهدار ما خداست ابله است که منت ناخدا کشد حالا در شعری وزن و و اما این معنا با آدم چه میکنه در کشتی بلا گر نگهدار ما خداست ابله کسیست که منت ناخدا کشن ممکنه سه ساعت چهار ساعت شما رو این شعر با خودش مشغول کنه حال هوا یا حال هوایی دیگه بشه به اقتضای درون این اکاس برونی داریم. از کنوزه برون ترابر هر اون چه درونست. چه میشه یه وقت من نگاه به این غاب بکنم دو ساعت در وصف منبت و خراتی و هنرمندی نجاری این قاب حرف میجنم چون درونم اون ذوق رو داره یه وقت زیبایی خطو تفسیر میکنم در اونم اون رو داره اما یک وقتم هست شما توجه به یک عالم معنایی دارید این شعر یه تلنگوری میزنه شما رو به اون عالم میبره این جمله یک حولی میده شما رو به سوی اون عالم شما رو وارد اون عالم میکنه وقتی وارد اون عالم شدی به اندازه حال و هوایی که نسبت به اون عالم دارید اکس عمله اون عالم نشون میدید خب ما تو این عالم ماده باید باشیم در پروردگار عالمه من انی جائلم سل ارز خلیفه ولتم سل ارز شما رو باید رو زمین قرار بدم متاع زندگی شما شما باید تو این عالم باشید برید تو عالم این مراحل رو طی کنید ولی حالا که تو زمینی تو ماده تو ملکی تون حال و هواتون از ماده در ماده برای ماده از ملک در ملک برای ملک از همین عالم در همین عالم برای همین عالم یا حال و هوا اینه گرچه در ملکم ولی از ملکوتم ملکی نیستم ملکوتیام مرقباق ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختن از بدنم تازه من ملکوتی که در ملکم برای ملکم نیستم تمام ملک را برای خودم یک قفس میدونم خورمان روز که از این منزل بیران برم. راحت جون طلبم و از پی جانان بروم من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی میکشم از برای تو نه من گرچه ملکم الان در ملکم ولی ملکی نیستم من ملکوتیم و برای ملک هم. ملکوت برای ملک عالی برای دانی دانی برای عالی معنای عقلی داره نظام من ملکی که ملکی نیستم، ملكوتی در ملکم ملکوتی در ملک برای ملک نباید باشه ملکوتی در ملک باید به سوی ملکوت پرواز کنه پس میگم انال الله و انا الیه راجعون هم انال الله و هم انا الیه راجعون بزرگان تفسیر کردن من میگم میگن وقتی که فرق مبارک مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام او شکافته شد کفی از خاکی یا حالا چیزی از کف محراب برداشت این رو رو زخم و این آیه شریفه رو تلاوت فرمودند منها خلقناکم و فیها نویدکم و منها نخرجکم تارت منها خلقناکم و فیها نویدکم و منها نخرجکم مولا قرآن ناطبه همه قرآن اون هفتم یه اشاره کردم به مناسبت شام قدیر با عدله اینا تو سینه مولاست اون مترجمان حقیقی وحیه چرا امیر در میان همه آیات این آیه رو انتخاب کرده بنده باشم ها یه آدم معمولیم حالا این آیات هم اومد دلیل نداره که چون من این آیه رو الان میخونن پس لابد یه رازی داره نه بند این آیه یادم افتاد ولی یک کمی دقیق باشم در حدی آدم عادی چرا الان این آیه رو خوند کما این که موقعی که پیغمبر حالشون به شدت بد بود حضرت زهرا سلام علیه ها کنارشون نشسته بودن عبیاتی که عبو در وصل پیغمبر گفته بود به زبان جاری میکردن پیغمبر چشوا کردن با اون شدت طب فرمودن دخترم به تعبیر من زهرا جان این آیه رو بخون افا امات ام او قتل انقلبتم علا عب... چرا این آیه چرا؟ ای قرآن آیات دیگه نداره. این آیه اگر از نظر تقدم و تأخر نزول بگیم نه اولین آیه از نه آخرین آیه بگیم اولی رو گفته یا آخری رو گفته اونجا حکمت نبوی ایجاب میکنه بگه یعنی بناس برگردوننا انقلبتم الان آقا بکن حالا میخوان کارها بکنن میخوان به دوران جاهلیت برگردونن ولی من زهرا دارم من علی دارم من حسن حسین دارم من زینبین دارم من اطرت دارم من اینا رو گذاشتم کنار قرآن اما به چه قیمت اینا باید آشورا درست کنن اینا باید تشت تلاها مطرح بشه خونه جگر یکی تو تشت بریزه پا. نمیدونم سر بریده یکی تو تشت داره و تا این که بخوان اون حکمت داره چرا مولا؟ وقتی تو محراب فرزشت کافته می شود منها خلقناکم و فیها نویدکم غمنها نخرجکم این آیه شریف رو مطرح میکنه بزرگان تفسیر کردن در تفاسیرم ذیلین آیه دیدم اشاره به این فرموده مولا میکنن میگن حضرت مخواد این توجه رو به ما بده اگر این مشت خاک رو میبینی درست من از خاک بدنم همون گونه که ابلیس هم گفت او رو از خاک آفریدی منو از نار اما وقتی خلقت از تین و لقد خلقنل انسان من سلالت من تین بعد و نفخت و من روحی هم فرموده یا نه؟ ثم انشعناه و خلقن آخرم هم فرموده یا نه؟ به حساب انشعناه و خلقن آخر و به حساب نفخت و من روحی درست منها خلقنا کن و بعد هم دوباره بر من میام تو این عالم ولی از این عالم خارج میشم دوباره وارد ی عالم دیگه میخوام بشم یعنی حضرت مخاطب این معنا رو لاقل این قسمتی که بزرگان فهمیدن به ما یاد دادن این مقدار رو بفهمین میخواد بگه فکر نکنم این خاک بود مردی تموم شد ما اومدیم تو خاک ولی از این خاک خارج میشیم دوباره سر از عالم دیگه برمیداریم این حال و هوا رو داشتن و نداشتن تقاضا دارم دیگه نمیخوام اینا رو بحث کنم دارم نتیجه بحث دعا رو میگم این حال و هوا رو داشتن نداشتن فروشندهی حال و هوای از ملک در ملک برای ملک داری حال و هوای از ملکوت در ملک به سوی ملکوت داری نهوه فروشندگی فرق میکنه بینی و بین الله یا نه معلمی مدرسی کاسبی هرچی هست هرچی هستی حال و هوای من گرچه در این خاکم ولی برای این خاک نیستم من یه عالم دیگهی دارم موقتم خلقتم للبغا لا للفنا ولکن من دارن الادارن تنتقلون انما الدنیا المزمار و قدن از وقتی این معانی برای یک کسی مطرح بشه و هر وادی که مشغول کاره حال و حواش حال و هوای دیگریه معمور الهی هست که این عالم رو تحمل کنه وگرنه آنی به این عالم دل خوش نمی‌کنه تو گفتی چاش خطبه حمام اینه توضیح میده حالا حال و هوا این نباشه چرا جز شکم و بعد چیز دیگه فکر کنه چرا جز پول چیز دیگه فکر کنه چرا جز مقام اصلا ببینید این چرا آخه عاقل یا وقت کار دیوانه یا کار عاقله ما دیوونه رو که بحثی نداریم. آقل رو داریم بحث میکنیم اگر عقلت اینگونه فکر میکنه و اندیشش اینه مگه غیر از خواب چیز دیگه است خب چرا دروغ نگه چرا کلک نزنه چرا مال مردم رو نخوره چرا سر مردم شیره نماله با همینه دیگه آقا هر کی تونه زد برد خورد برد دیگه ولی وقتی یک ارزش های دیگه نه آقا اینا نیست اصلا شک و شهوت ابزار به عنوان وسیله برای مراحل بالاتر اون حال و هوا اگر ایجاد شد این انسان دیگه انسان الهی میشه انسان الهی افعالش میشه اله پسند لذا میشه مظهری از مظاهر اله در آدم وجود دعا حالا این دقت کنید دعا حال و هوای آلم معنا رو ایجاد میکنه آدم میبره توی وادی دیگه. خیلی متاسفم که این مثالو رو میزنم ولی چه کنم؟ مجبورم صد من نمیفهمم فکر میکنم مجبورم فهمم اینجوری میگه مثلا بعضی ها چون راه صحیح رو نفهمیدن میخوان از راه غلط خودشونو رو آرام کنن مثلا میگه آقا این قصه داره پدرم رو در میاره این گرفتاری داره منو میشکنه لذا مشروب میخورم حال و حوام عوض بشه برم تو عالم بیخیالی متوجه این غصه نشم خب راه بهتر نفهمیده بدبخت خیال میکنه با این حالت خودشو از این مشکل ببره بیرون توی حال نمیفهمه اون حال هوایی بعدی خطرش بیشتر از این غصه هست اون... چون نمیفهمه اون نمیفهمه یا تریاک میکش خدای نکرده هیروین مصرف میکنه آقا چرا؟ میخوام نعشه بشم که چی بشه؟ برم توی عالم دیگه خب اون عالم چیه؟ او به اختضای نعشگی خودش یه ارزشی برای اون عالم قائله برای اینکه از این عالم راضی نیست خارج شود وارد اون عالم بهتر بشه با اینکه در این عالمه مستم تو این عالمه ولی خودش توی عالم دیگه میبینه نعشه تریاک و هروین هم تو این عالمه خودش توی عالم دیگه میبینه ولی با این مشکلات که پدر خودش درمیاره بیچاره میکنه یه وقت به خودش میاد میگه من خواستم از این عالم با عالم بهتری برم خیلی بدتر شدم خدا اومده میگه بنده من تو مال این عالم نیستی لذا به این عالم راضی نمیشی یه روز بچه بودی خیال میکردی با اسباب بازی دلخوش کنی تمومه اومدی بالاتر دیدی مسخره است تو بحبوه نوجوانی و جوانی و یه مقداری اوایل زندگی مسائل خاص جنسی و غیره و زندگی و زن و اینا پکر میکردی یکم اومدی بالتر دیدی خب اینا چی؟ آقا میزی داشته باشم، پستی داشته باشم، مقامی داشته باشم خودم رو باره خود جامعه بکشم واقع مطلب یک کمی فکر بیدار بشه که خدا خدا و عرضش امیر قسمت میدم تک ما را در شناخت عرضش های آلم وجود بیدار بفرما یه مقدار بیداری که چی؟ آقا این مثال من یه بار دیگه خوشم میاد به خدا راست میگم خودم با خودم خیلی وقتا خلوت میکنم فکر میکنم میگم فرض کن تمام دنیا جسد و منو ببینید با این مثالی که میزنم اینجوری هست یا نه اگه فکر کنید آقا یه کودکستان پنجا تا کودک دو ساله سه ساله توش به بنده میگم دو ساعت سه ساعت مسئولی مهد کودک کودکشو بنده رفتم هی hey, دست کنم تو جیبم مدارک تحصیلی و تعریف های دانشگاه های دنیا رو در بیارم آبم نیست اینجا بزنم چرا میخندید خب کی چی بشه بچه های دو ساله ببینن که چی بشه خب این بچه دو ساله چه بدونه شما مدرک از فلان دانشگاه داری؟ چه ندونه؟ چه فرقی میکنه؟ اگر کسی موحد باشه غیر از خدا همه همونجوره نه توحیم غیر خداستا. وقتی خداداری غیر خدا کیه که من خواب کنم ببینید آقا ندکن چون حال هوای اون عالم رو نداری دعا میخواد تورا ببره تو اون عالم لذا وقتی میایی در مقابل پروردگار دو طرف قضیه رو مسته هم یک انتل قوی یو انتل غنی یو انتل خالق و انتل مالک و انتل رازق و. اون بر همش ارزش این طرف انال زعیز انال صدیر انال مسکین انال مستکین انال خلاصی چی بگم حالا اگر بخوام مزاخ کنم انال هیچ چیز عربی و فارسی، انال هیچ چیز من آقا شاید بهترین تعبیر همین باشه هیچ آقا هیچ, هیچ. به یه معنی هیچ ولی به یه معنی خیلی چی چون او داره ما رو دعا میخواد ببره تو اون عالم. حالا این چقدر ارزش؟ ما این عرضش داره بیاریم پایین در این حد فقط. آیی گرفتاری دارم میگم خدایا بده. اینم داست چون خدایا توش هست. چون توجه به خدا توش هست. گای خدا خدا خیلی ما رو دوست داره. از هر دوست دارنده دوست دارن هر خداست. خودشم فرموده. اره هم ار و راه مینه. خب یه <تصفح> معلمی که شما رو دوست داره. اون راههایی که برای هدایت شما لازم باشه به اندازه قدرتش اعمال میکنه حالا خدا که دیگه معلوم لذا معلم میاد گاهی اینجوری احساس کنه میگه که ایش را رو میخوام بیارم تو راه راه های مختلفی رفتم یکی از این راه مثلا نمره کم بشه بدم این میاد سراغ من میخوام بیارمش بعد شروع کنم باش نمره بهش اضافه میدم وقتی میخواد تو پرونده نهایی رد بشه بهش میدم ولی اینو میخوام یه روش تربیت پیش بگیرم بیاد وقتی میاد دیگه این سوالو بخون میخونه خب جواب سوال چی میشه جواب این این مگویی که میخوام تو ذهنش توجه بدم در قالب حل مشکل این سوال که آقا شما خوب تو برگه دقت نکردی باش مطرح میکنم بعد میگه پدرادر الله ارفاق میکنم دو نمره بده دو نمره میده ولی به این صورت یه تلنگری بهش میزنه بداداشوی بداداشوی خدا گاهی تو اوامل مختلفی گوش کم میتابونه بعد یه نصف شبی در حالت عادی حال نداشتا ولی اون نصف شب پا میشه و ربی من منلی غیر در حالت های عادی شب جمعه حال دای کومل نداشت ولی اون موقع میاد از اعماق جان میگه خدا یا غیر از تو که من کسی ندارم خلای امکنل فرار من حکومتی من کجا میتونم برم ای خدا میخواد دعا درستی این مراحلشم حس اینا رو قبول دارم اشتباه نشه روایت هم خوندم حتی اون کوچولو چیزا رو می از خدا بخوا ولی ارزش دعا رو بالاتر ببین خلاصه این میشه دعا میخواهد الان حدیث می براتون دعا میخواهد شما را ببرد تو عالم معنا گرچه در ماده ای با خدا باش در خلق زندگی کن گفتن زمان شاه در تبریز یک واعظی بود مرحوم ناصری خیلی عالمه برجسته‌ای بوده منبرهای بسیار خوبی هم میگند داشته من که نمی‌شناختم این مرتبه حساسیت به معروف و نهی از منکر داشت 4 شب منبر بود ده شب زندان آزاد میشد 5 شب منبر بود 6 شب زندان خلاصه این بنده خدا اینجوری بود تا یه بار از زندان دیگه تعهد گرفته بودن دیگه اجاره ها ایشون اومده بود قف‌قف منبر گفته بود آقایم خانم من تعهد دادم نگم شاه ظالمه من تعهد کردم نگم زن شابیه جابه من تعهد کردم نگم چرا پی مملکت که قانون اساسیش اسلام داره مشروب فروشی دایره من دیگه هرپار نمیزنم حالا بند نمیگم چرا صلاوتو کتاستا ماما <تصفح> <آه>. ماما <تصفح> مهم این از دیگه بیشتر از این که بل. خب ببینید دعا میخواد ما رو ببره تو اون عالم این جمله یادگاره این 7 جلسه بحث دعای ما از این آیه باشه من برای خودم ارزش میدونم حالا اگه شما ببینید ارزش داره یا نه یادگار 7 جلسه بحث دعاء ازا که عنی عبادی این یادمون باشه دعا تراهی که خدا ما ملکیان ما خاکیان ما گرستاران عالم ماده رو گرچه در این عالم ماده این ببره در حال و هوای عالم معنا قرار بده این مدتی که از عمرمون را میخواییم در عالم ماده سیر کنیم با حال و حوای عالم معنا سیر کنیم لذا تو هر قسمتی که کار میکنیم قرق کارت بشو، مشغول باش، فعال باش، جدییت به خرج بده، کوشا و قوی ولی با انگیزه الهی برای خدا. حالا یک روایت اجازه بدید من در این زمینه بخونم قسمت بعدی آیه رو دیگه نیم ساعت وقتی که باقی مونده سریع انشاءالله تمومش کنم و دیگه بحث این آیه جمع بشون. در اصول کافی. جلد دوم همون باب احادیسی که در خصوص دعا و حس بر دعا و تشویق به دعا بود خدمتان عرض کردن یک روایت در صفحه 470 سد و عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه روایت بسیار جانانهی در این رابطه است همه تو عبا عبدالله علیه السلام یقول عبدالله ابن سنان میگه امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود از دعا یورد دل قضا دعا قضا رو تغییر میده حالا اینو شاید برسم امشم یه مختصری توضیح بدم حالا بمونه بعد ما ابرم ابراما ابرام رو وقتی خیلی میتابونن میتابونن محکم بشه که چندتا تا و با همدیگه مثل این سیم که با همدیگه تا بتونیشه اینه میگن ابرام محکم کاری شده باز کردن مثل ای که اینو مثلا چیز کردن بعد بخوام بازش کنن بشکافن میگه دعا غذا را رد می کند بعد از اینکه که مبرم شده مثل اینکه که خیلی تابیده صف شده اما بازش می کند اینو داشته باشید اشاره می کنم منظورم قسمت بعدیش. اکثر من دعاء زیاد دعا کنید ث انو مفتاح کل رحمه مفتاح و کلید هر رحمتی دعاست و نجاح و کل حاجه است. هر حاجتی هر خواسته ای این دعا عامله رستگاری شما میتونه باشه ولا ینال ما عند الله عز وجل الا بالدعا در نظر خدا یه ارزش هاییست یه مقاماتیست نمی رسید به اونجا مگر با دعا این بحثی که ما داریم با دعا حالا هوا رو ببرید تو عالم غربه الهی تو عالم غربه الهی که رفتید لذا ببینید مثلا یه بزرگواری واقعا از یه حرفش خوشم می اومد داشت به بعضی ها توصیه می کرد سفر زیارتی کربلا مکه امام رضا، کارهایی خیر روزمره گفت آقا جون، انقدر چورت که ننداز چقدر ثواب بردم من یه بنده خدایی به بعضی ها میگه آقا من کمک به تو میکنم بنویسید نصف ثوابتون مال من آخه مسلمان اگر تو کار خیر برای خدا بکنی خدا بیش از نصف ثوابی این نمیتونه به تو بده تو وقتی به این میگی پس چشم ثوابی این دوختی میگی نصف سواب تو رو میخوام خب خدا میگه برو خودید میدونی با این اولا چی میدونی پرده قیامت این ثبابی داره یا نداره تازه داره خب بندازه نصف ثبابی این جیرت میاد بگو خدا چون تو دوست داری من این کار با بندگانت میکنم خدا بیشتر از نصف ثبابی نمیتونه به تو بده عاقل باشی لذا فکرت تاجرانه مادی نکنیم فکر تاجرانه الهی بکنیم چون قرآن داره ادلکم الاد هجار قرآن هم تجارت رو به ما یاد میده چه تجارتی برای خدا بودن وقتی میخوای برای خدا حالا این چون مجبورم میگم خدایا تو میدونی به چه انگیزه میگم یه وقتی یه آقایی به یکی از دوستان ما تماس گرفته بود شنیدیم فلانی سفندره ورده بود خیلی پول میگیره برای سخنرانی راست گفته بود خیلی خیلیشون زیاد میگیره پس ما نمیتونیم یه دهیشون ده دعوت کنیم میبینیم معمولا دعوت میکنیم ایشون قبول نمیکنه گفته بود بله من فکر نمی کنم چون من یه بار به گفتم چقدر شما میگیری گفت اون چه من میخوام شما نمیتونید بدی چون من از خدا می گیرم خدا میده امیدوارم امیدوارم امیدوارم به برکت مولا صاحب اصل و زمان خدا این فکر از وا نگیره که اگه بناس ما چیزی بگیریم چرا از خدا نگیریم چرا بخوام از بندگان خدا بگیریم خدای این بنده خدا این بنده خدا در هر شطیه او خدای اینه لذا چرتکن کنند از این. اینقدر ثباب کردم، اینقدر کاریشی کردم. تو بگو خدا یا تو دوستداری کار رو بکنی ما این کار رو میکنیم. خودت میدونی دوست داری این کار رو من بکنم، من میکنم. میخوایی ولی جهنم ببر هر از دوست داشت، یومده نکوز. این معرفتی دعا میخواد این جوری ما رو بار بیاره. لذا یه لحظه پایی منبری بودم، به منبریشم اراده دارم، خدا ازشون کنه، عیادت دارن. مجبور شدم از پای ممبر که این خیلی بی ادبی بود ولی این اعتراضو بکنم تون احساس تکلیف کردم داشت داشوالای ممبر توضیح میداد 15 نفرم بیشتر پای ممبر نبودن داش میفرمود که این چرت و گفتن گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود من در عجبم که اون کجا خواهد بود اونجا که تو ازاب عذاب نوبت اونجا که تو نیستی کجا خواهد بود گفتم مزخرفات چیه با کلمه مزخرفات دیدن دیگه یه کمی بی‌انصافی از پای ممبر که ما جواب بدم معنای این شعر ما دو مثل مارمیت ازرمیت رو به ظاهر آیا نگاه کنید جبره مارمیت از شما نیستید پیر میندازید خداستید این که جبره اما وقتی اوج تولید مخواد نشون بده خود و در مقابل خدا هیچ ببین گفتی که ترا عذاب خواهم فرمود من در عجبم که اون کجا خواهد بود از این دید نگاه کنید خدایا یا هرچی تو میخوای من میگم چش. اگه تو میخوای منه ببری جهنم تو خواستی؟ اگه کسی یه چه مقامی داشته باشه تسلیم خدا باشه این من بنده تو دنیای حاجت دارم تا حاجتم روا نشده هی hey, دعا یا الله یا رب یا رحمان چه می کنم وقتی حاجتم نداد دیگه اصلا از این رو بنرو میشم دیگه نمازم هم شاید خدایی نکرده رها کنم ولی حاجتم که بده آ خدا خیلی قوا چرا تو حاجت من داد پس ملاک منم مورچه افتاد تو آ گو وای دنیا را آب برده گفتن دنیا را من را آب برده خب تو رو آب برد کم اگه دنیا غیر از منه خودشه میخواد ببینه دعا میخواد ما را ببره تو عالم الهی بند خدا داری عالم معنا داری خودتو در رابطه اون عالم ببین من با همین سن مختصر خودم تجربه کم خودم تو قسمت های مختلف چه ایران چه خارج ایران گاهی برخورد کردم دیدم صادقانه بگم متدین به معنای واقعی کلمه برای خدا کلمه همه دین برای دنیا دین برای مقام دین برای چی دین برای چی حتی استفتام و استثمار علمای دینی برای برخ کشیدن خودشون استثمار عالم دینی برای برخ کشیدن خودشون این چه حال معنوی نمیشه که اگر عالم دینی رو عالم دینی قبول کردی به تو میگه آقا جون زندگیت غلطه. نه؟ آقا رو نظر شوابس کنیم دیدم میگم آقا رو نظر شوابس کنیم یعنی چی؟ یعنی آقا رو بخری. دلتای کله ی یه کارایی بکنی سر آقا رو همین امروز بود یکی از دوستان گفتم از شما این توقع رو دارم. چون تو میخوای تو راهی پیش بری که مبلغ دین بشی. میخوای اینجوری باشی؟ نفوذ پذیر نشو از الان تمرین کن پول در تو نفوذ نکنه. مقام در تو نفوذ نکنه. بهبه و چشه در تو نفوذ نکنه. مرید داشتن و مرید نداشتن در تو نفوذ نکنه. خدا را ببین بقیه هم رو به کنار. یه کفه خدا. خدا میخواد اینجوری باشی باش هر کی هر چی میخواد بگه بگه. خدا نمیخواد اینجوری باشی. نباش هر هرچی میخواد بگه بگه دعا میخواد شما رو اینجا امام علیه السلام چی میگه زیاد دعا کنید مقامی در پیشگاه خدا هست که با اون مقام نمیرسید مگر با دعا کردن حالا قسمت قضاشم یک اشاره بکنم خدا غذا دارد و قدر دعا در روایات ما سرابان داریم که یکی کش الان خوندم قضا را تغییر میدهد رطب میکنه ولو مبرم شده باشه ابرام شده باشه میخواد بازش بود یعنی چی یعنی مگر خدا نعوذ بالله یه بحثی در اصول فقه دارن بعضی بزرگان جدش دارن مستهزران که مسببه مسببه حرفی مسخره ای دارن میگن که شما عنوان مجتهد وقتی رفتید دنبال استنباط شریعی ممکنه استنباطی بکنید حکم واقعی اون نباشه شما قرارداد نذاشتید، سوء هم نذاشتید. شما اینجوری فهمیدید. خدا چون به شما اجر میده، برای اینکه شما بیشتر از این نفهمیدید. اونا میگن میدونیم چرا؟ چون خدا نظر خاصی نداره تا ببینه شما چی استنباط میکنید هر چی استنباط کردید همون رو تثبیت می‌کنه. مسخره است این حرف. فقهای شیعه نمیگن. اینو بعضی از این مزخرفات این گفتن. اینجا نمیخویم بحث مصوّبه رو به کار ببریم. پس خدا اونجا نشسته ببینه شما دعا میکنید غذا رو به میل شما. نه خود دعا از قضا و قدره. یعنی من اینجوری بگم خدا دارو در این عالم قرار داده دارو درد را از میان میبرد برو خود رو با نظام قرارداد خدا تطویق بده درد تو بشناس دارو بشناس با این دارو این درد از بین ببرد یعنی اون قضا و قدری که خدا در عالم مقدر کرده خود تو با اون بسو بده دقت کنید توضیح میدم الان مثلا طرف میاد میگه آقا مبتلا به درد معدم داره معدم سراخ میشه از درد تا صبح نمیتونم بخوابم، چه بکنم بیسارم میگه آقا ایشون در این زمینه وارده میدید سراغ ایشون آقا چه بکنم میگه بذارید بررسی لازم رو بکنم حالا عکس میگیره نمیدونم آزمایشی میده هرچه فهمی در معده شما زایه ایکس پیدا شده ایگر یه دارویی است که مثلا از فلان ماده غذایی گرفتن یه قاشق شربت خوریش یه حبه قرص به اندازه یه کپسول معمولیش این خاصیتو داره وقتی اون بره تو معده این زایه رو از روی میبره خب همه اینها قرارداد خدا هست یا نیست خدای عالم قرار داده اگه معده این غذا بهش رسید اینجوری میشه مال مال من شد اون داروام اگه بیاد تو معده بره اینو از بین میبره خب اون آقا رو هم زحمت کشید پیدا کرد منم شناخ آورد داد به من میگه این کارو بکن من خودمو با این قانونی که خدا در عالم قرار داده وست دادم یه کپسول میخورم میگه آقا راحت شدم من دیشب تا صبح دیگه اصلا درد نگرفت میگه خب این نظامو فهمیدی با نظام هماهنگ حرکت کردی کسی اینو نفهمید یا اون کسی که اینو میدونه نمیره سراغ اون کس اینقدر می تا از بمیره خدا این غذا را این گذرانده در عالم را این سپری شده برحصلی را در عالم ماده به اختضای ماده قرار داده در عالم معنا به اختضای معنا قرار داده در عالم ماده اینه یک کپسول این کار بکنه شما برو خودتو بف بده در عالم معنا دلا بسوز که سوز تو کارها بکند دعای نصف شبی دفت ست بلا بکنن یعنی دعای نصف شب که مال روحیش که از روح در میاد از یک کپسول کمتره اون اثرش دوالا ماده است این اثرش دوالا معناست لذا دعا غذا را برمیگردوند یعنی مثل اینی که شما بگید دارو این دردی که الان اومده تو بدن شما از به میبره با این توجه که دارو ماده است، به اندازه ماده اثر داره. دعا مال عالم معناست به اندازه عالم معنا اثر داره. لذا اگر کسی از دید عالم معنا به ماده نگاه کرد. شما این آیه رو چی میگید بحثش گذاشته؟ ولو ان اهل الغرا آمن و لفتحنا عليهم بركات من السماء ولا آمنو و بتوقوا آمنوا و بتوقوا که مربوط به حالت معنویه برکات آسمان و زمین رو برات نازل میکنه و علل استقامو الچریقه لا اسقیناهم ما ان قدقا که بحثش قبلا گذشت ما قدق بهشون میدیم یعنی آقا از عالم معناوی یا تو عالم ماده از بالا بر این عالم نگاه کن دعا پرواز از ماده به معنا بعد با حال معنا تو عالم ماده سیل کردنه وقت کسی این توجه رو پیدا کنه حتی نسبت به قضا و قدر عالم هم چیگونه نگاه میکنه و بعد حالا ادامه آیه رو ببینید و ازاد سالکه عبادی انی سرینی غریبون و جیب و دعوست داع ازادان من که نزدیکم که گفتیم قبلا یعنی چی حق الیه من قبل الودهی فرموده ارز کنم خوبم معکم اینما کنتم فرموده یه جا معیت رو میگه یه جا حالا اینا بحثاش قبلا گذشت کاری ندارم <تصفيق> <تصفيق> اوجی و دعوت دا من که اجابت میکنم دعوت دا کسی که دعا میکنه بعد فوری میفرمات ازادعانه یعنی دعانی وقتی منو میخانه <تصفيق> پس میشه من دعا باشم ولی دعای الله نباشم دارم دعا میکنم دست و آسمان ملنگ کردم یا الله یا الله میگم ولی دعا نیستم. خدا رو نمیخونم چرا؟ میگم خدا تایه دلم میگم خود من که پول دارم اگه لازم شد پول کار با پول علم میکنم پس اینجا خدا میگه بذار بیدم با پولش برو من که پارتی دارم با پارتی همچنین چنان میکنم یه بار مزا کردم که دیوونهی بود من دیده بودم شهری که ما درس میخوندیم این دیوونه تو اون شهر بچه مدرسهی ها میدیدن گایی میترسیدن فرارم میکردن این میومد داد سرا جلو داد سرا باید میستن اشهان یادمه داد اون شهر تابلو رو نگاه میکرد و ادا در میابرد داد, داد سرا یا پول یا زور یا پارتی یا پول داد سرا سرا نمیخون نکه پارتی دارم من که چنین چینا میتونم انجام بدم این دعا نیست یک ازاد دعا نه دعا باشه تو روایات گفتیم دعا چیه خلاصه این بود حال هوا حال هوای الهی باشه خدا مطرح باشه تو پرانتز بگم خدایاتو شاهدی من برای خودم دلم میسوزه بلند میگم شما میشنوید خود منی بیچارم اینا رو میگم بلندتر که شما هم بشنوید بیاییم دلمون برای خودمون بسوزه خیلی قرق مادهی صادقانه میگم. خیلی غرق ماده‌ام هندونا میز دیگه دعاهامون در رابطه با ماده است اعمال کار خیرمون کدوم کار خیر بازدهی اقتصادی بیشتری تو دنیا داره پس کار خیر رو برای بازدهی اقتصادی میخوام خدا شاهد یا آقای سه سال منو به نمیکن. ما دو هفته قبل بود باز ور خورد کردم بهش هنوز هنوز دا... گفتم تو سه سال قبل این رو من زدی گفت یادشه گفتم بله گفتم فلان جای رو من زدی گفت بله آقا شما تو روایات کار کردی کدوم دعاهاست که امه میگن بخونید زود پولدار بشید گفتم سه سال قبل این سال از من کردی گفت یادشه گفتم بله فلان بود یادشه خندش کرد گفتم یاد سه سال قبل چی جواب دادم حالا همون جواب میدم چطور طور از روایات ائمه کدوم دعاست که منو آدم کنه من نمیگم پولدار نشیده بشید در راه خدا خرج کنید البته نه جمع کنید یه گوشه بذارید برای خدا خرج کنید دست بیچاره آره بگیرید خدمت به خلق کنید عالیه من اشتباه نشه اما نیتو انگیزه این نباشه آقا شما این همه مطالعه کردی روایت چی میگه من میخوام پولدار بشم پس معلومه دینم برای پولداری میخواید رابطه با عالم هم برای دنیای خودتون میخوایی را... یه اقدریتی حال عبا بیاییم دعان منو بخونه بعد دو مالش ببینی سل یشتجیب لی من خیلی روی این فکر کردم تو تفاصیرم زیاد گشتم خدمت بعضی بزرگانم رسیدم گفتم تو تفاصیر خیلی ندیدم به این قسمت به قول عوام بند کنم اخه فلی از تجیب و لی بعد از اینی غریبون عجیب و دعوت اددائه ازادان فلی از تجیب و فا پس اجابت کن منو خب ما همه جواباتی اگه برفرد غریبم نبود عجیب و دعوت اددائم نبود ما باید اجابت کنیم استجابت کنیم خدا رو بپرد چیه منظور خوب دقت بفرمایید. <تصفح> معنای آمن اجابت. باید شما خدا رو اجابت کنی یعنی هر چی خدا میگه بگید چش خدا میگه نماز بخون بگو چش میگه روزه بگیر بگو چش میگه آقا خمس تو بگو چش و با حاکزو یه ونده خدای از من میپرسی من مقلد فلان مرجع مرجع من میگه هدیه خمس داره ولی مرجع اون یکی میگه هدیه خمس نداره میشه توی یه مسئله من با اون مرجع مراجعه کنم همه جو پول آقا خب من نمی ای این پول واقعا مجده میکنه ین کهیه بندنده خدای با اینو اوایین تبریزی ها رو هم می بینم و امشب ما همش یاد مز تبریزی افتادیم نمیدونم چرا نگفت در تبریزی آقایی بود خودشو رو به دیوونگی زده بود می بخلول نقشه بخلول انجام میداد خب خیلی سالی قبل گفت که صندوق انتخابات بود و جمعیت هم اومده بودن که ری بدن استاندار و شهردار و فرماندار و همه هم ایستاده بودند و این آقای بهلول اون عصر هم داشت اونجا رد میشد گفتن آقا بیا بیا تو هم رای بنداز گفت برید کنار من بیا اومد و این صندوق رو هی بوسید هی دست کشید هی بوسی ده دست کشید گفت چه می‌کنی گفت میگم امامزاده نیست دارم زیارت میکنم آقا جون سن نه گفت امامزاده است کوده امامزاده موجزش از این بیشتره حسن میندوزیم حسین درمیاد پس معجزه میکنه امامزاده است حالا آقا پول عجب معجزه میکنه. این پول عجب معجزه میکنه. همه چیز رو میخوان با دید پول نگاه کردن بابا یک کمی حاله هوای ماده رو ویل کنیم من خجالت میکشم میگم ولی خدایا تو شاهدی راست میگم میخوام تو خودم هم از یه مقدار پول، مقام، دنیا، مادیات جلسات دینیمون به حساب مادیتمون. جلسات روزمون و رفت آمدهای های روزهامون آقا به گوش شنیدم خواهی درد اجتماعی مذهبی ماست که باید روش فکر کنیم آقا من چند بار روزه شما آمدم شما تو روزه من نیومدید. یه عدید اصلا روزه منو روزه شما نداره. خونه ای که پرچم سردرش خورد دیگه خونه اون صاب نیست مجلس ماموسینه. اگر سابخونه خونه دشمن خونه منم باشه من اگه روزه بتونم برم اون در باز باشه شما بران تو روزه روشی روزه منش شما... آخه من میخوام بدونم شما منو تحویل میگیرید گفتم پس من پس روزه نیست ببینی. اینا درده حال هوای ما دیگر همه چیز رو فدای ما کردن اما وقتی حال هوا معنا بود میگه تو و تو نیکی میکنه در دجره که ایزد در بیابان از دهد با خدا رو کوچک دیدیم فلیش تجیب و لی پس معناه عام میشود اینجا معنای عام اینه که پس باید منو اجابت کنن این... ولی در این رابطه میگه فا فا میاره داره رفته به قبلیش رو میگه میگه وقتی من غریبم یعنی نزدیکم من عجیب و دا زاده آنم پس خواهید من اجابت کنم یعنی چی؟ یعنی قبول کردید من از همه شما نزدیکترم قبول کردید منم که اجابت میکنم یعنی هر چی بخواید من میدم پس بیانی سراغ من دیگه کجا میرید چرا سراغ دیگران میرید تا اون حد حالا من نمیدونم این سندش قویه ضعیفه نمیدونم خوندم ولی بررسی محققانه نکردم نمیدونم نقل میکنم میگن که نمرود دیگه خیلی دیگه میدونید که گفت که میخوام خدای ابراهیم رو بکشم حروفه خدای ابراهیم رو بکشم که <تصفح> مردم بفهمن که ما میتونیم خدا بکشیم مهموری می گذاشت و برید بالای مثلا برج بیستید و چیکار کنید و تیری به سمت آسمان رها کنید تیر آس... رها کردن ملائک مقرب الهی به خدا عرض کردن خدایا این خیلی فرو شده این دیگه داره خودش گم میکنه یه خدا فرمود که تو زبش نزنید نامیدش نکنید یه چیزی از اون بالا خونالود بندازید پایین که خیال کنه مثلا خدا رو گشته رفتن ماهی از دریا گرفتن. ماهی بناله در اومد که خود از من مثلا ضعیفتر تو این عالم نبود حالا نمرود مخاد یکی رو بکشه من گفتم در, در حالا حرف کردم اینا سندش چقدر حالا اسرائیلی یا نه ولی اصل قضیه‌اش غریبه به مضامین قابل قبوله ولی عین این, این ها دیگه من نمیدونم من دارم نغرو میکنم گفت خدا مقرر کرد که از حالا به بعد من کاری میکنم که ماهی دیگه ذبح نخواهد ماهی رو سر نبرن همونجوری مصرف ماهی خونالودی از بالا افتاد پای نمرودم خیلی جس گرفت که ببینید ما خدا رو کشت خب خوب فرشتان خدا که نیستن خدای اخر که فرمود حالا حالیشون میکنم بعد که نمرود خیلی دور برداشت منم که شنیدم میکنم یه روز گفت که خب خداال که کشتم هم خدای این خلق منم هم رازق این خلق منم یک نهنگ قورفیکری از تو دریا دانش آورد بالا به اذن الله به زبان آمد نمرود قضا بده نمرود بدید ریخ ریخ هر چی داشتن گفت خب این که مسیگ تمومی نداره ما دیگه چی نداریم. گفت این که میگن دو گرد تا واقیه گفت من سه گرد قضا میخورم نسلشو خوردم دو گرد تا نیمش واقیه گفت هیچی ندارم گفت تو یک مخلوق از مخلوقات خدا را رو نتونستی روزه بدی یه بعده خدا اونه که همیشه داره روزی میرسانه خوبر رازه خوبر رزا حالا این در قابل یه داستانم برای ما نقل کردن سندش چقدر به چی تحقیه کنیم تو این عالم با داشتن خدا فلی از تجیب بودی، پس منو قبول کنید پس بیایید منو دارید من خدا رو با چیز دیگه عوض نکنید بیاید خدایی بشید فلی از تجیب و لی. فلی و بی پس بعد به من ایمان بیارن به من ایمان بیارن که چی مثلا یعنی ایمان عام اشخدو الله اله الله و ها کزه آمن تو به الله مثلا نه در این رابطه ازا سال که انی عبادی فانی غریبون اجیب و دعوت ازاد دعان فلیستجی بولی فلی, فلی اومنی بی پس این ایمانو پیدا کنی ایمان به این معنا منم غریب به شمام اجابت کنندم همه چی دست منه این ایمان رو پیدا کنید بشید مؤمن در این سر لعلهم یرشدون باشه که راه باخعی رو در پیش بگیرید وقت اجازه نمیده وگر میخواستم حالا میخوام خودتون این کار رو بکنید ارتباط این آیه با آیات شست تا شست و چهار سوره نمل که آیه 63 و سه امن یو جیب المستر ازا دعاه و یک سو که معمولا هم به عنوان توسل میخونن چرا میخواستم امشب اونچار آیرم توی این بحث بیارم اما دیگه وقت اجازه نمیده اجازه بدید این بحث رو جنبندی کنم اشارهی به برنامه انشاءالله ماه محرم داشته باشیم و, و دلم هم میخواد این آخرین جلسه سال قمری است آخرین شب جمعه است اولین جلسه ما دیگه شب جمعه آینده محرم باید شروع بشه آخر ما اول سال پارسالمون رو با امام حسین شروع کردیم، چون ایام محرم بود دیگه آخر سالمون هم جلسه رو مخوام با امام حسین پایان ببریم مخوام امشب انشالله بریم کربلا و بریم در خانه امام حسین و به امام حسین هم عرض کنیم آقا نه امسال ما همیشه ما را اول و آخر ما رو خدایا حسین و حسن و علی و زهراب و ای خانواده قرار بده انشالله انشالله خب گمبندی بحث چی شد؟ دعا <تصفيق> <تصفيق> حال و هوای عالم معنا به ما میده. ما رو تو عالم معنا میبره. با توجه به عالم معنا در ملک سیر میکنیم. سیر ملکی بر اساس معنا، سیری که خدا میخواهد و اگر کسی خدایی شد، او برده و میگه ایمان بی حرفا بیارید. اینا رو اجابت کنید. اینجوری بشید تا اون راهبری و رشد و تو مسید قرار گرفتن برای تون حاصل بشه انشال از هرچه بگذاریم سخن دوست خوش هست ما که خدا رو شک این فرهنگ رو از بچگی همه من داریم که بگیم من از کودکی عاشقت بودم قبولم نما گرچه آلودهام. یادش بخیر خدا قسمت همه توم بکنه توی حرام امام حسین و توی سحن امام حسین با دوستا زمزمه می کردیم میگفتیم اینجا به امام حسین بگیم من از کودکی آشقت بودم قبولم چه آلودم ولی خب حالا حاله هوا دیگه حاله هوای دیگریه حال دی در آسانه محرمه روزم که روز نزول آیه حلعتاست امروز دیروز روز مباهله بوده بعد یا میگن احتمالا امروز هم روز مبااحله بوده. ایام ایام خاستی است آخر سال قمری آخر زللهجهه در آستانه ماه محرم انشالله می همونطوری همون طوری که معموللا در فرض کنید نوروز هید قربان، ایید ستر ایده قدیر، آدم داره خودش رو آماده میکنه برای ایده. خونه چکونی میکنه منظر تمیز میکنه مهمونا میان دوستا میان در محرم یک خونه تکانی روحی داره برای آماده شدن ازاداری ما حسین اینو تقاضا دارم دقت کنی طول نمیدم وقت گذشته انایت بفرمایید یه دهه محرم میگذره یه محرم و سفر میگذره آدم هش میکنه سبک شد وال در آورده حال هواش حال هوای دیگریه تا محرم دیگه نعشه هست نعشه حسینی لذا یه اشت من خب کارم اینه دیگه با جوانا در ارتباطم به افتخارم میکنم که با جوانا اینجوری نشست و برخواست داریم خدا شاهده راست میگه بارها شده بعد محرم جوانو اومده میگه میخوام توبه کنم امام حسین منو چکون دارم امنال حسین مثباه الهدا و سفینه و نجا دختره اومده میگه زینب منو تکون داد میخوام چادر سر کنم حالا چیکار کنم و خدا شاهده همین پارسال تو همین حسینیه شاید همدن جا باشم چشمم نمیبینه یه جوان عزیزی فرمود من فقط امسال تو مجلس اومدم من تو حالا احلی مجالس نبودم من اومدم تو این مجلس ولی تصمیمم گرفتم یک خواهش از شما دارم از من کاری بر بیاد چشم چیه؟ گفت دعا کن امام حسین یه کاری کنه من جایی دیگه نرم من بمونم گفتم من چه کارم عزیزم دعا و از من دعا میکنم ولی خودت قدرتو بدون تو شست و شو شدی تو دریای زلال آب هدایت عوی عبدالله السلام لذا گایی وقتا محرم چه میکنه گایی وقتا روز عاشورا. برای یه زرف غذا گرفتن مشت میزنه بقل دستیشو بره کنار غذا رو من بگیرم و قص علا حاضا این بستگی به یک سلسل آمادگی ها برای ورود به مجلس ماموسین هم داره همونطوری که در شبای قدر گفتم بعضی از امسال سال شب قدر تموم میشد کاری میکردن که شب قدر آینده اگه زندن فیض ببرن همین چند روزی که باقی مونده برید توسل پیدا من بیچاره دعا کنی که دستم رو بگیرن که یا حسین ما همیشه میگیم یا حسین ولی یه کاری بکنیم محرممون یه جور دیگه بگیم یا حسین این از جانمون برسیزه یا حسینی که از دلمون در میاد بگیم و تو هم یا حسین ما رو به حال خودمون راه نکنیم دستمون رو بگیریم خب الان چشم دل باز کنیم کاروان کربلا کجان نزدیکی های کربلا چون دیگه تا دوم دو محرم و سوم و دیگه الان چند روزی مونده دیگه الان کاروان از مکیه که خارج شده خیلی از بیابونارم هم سر گذاشتن همینجور تیکه تیکم که اومدن هی خبرها بینا رسیده مسلم کشتن هانی رو کشتن فلان غاصد رو گرفتن با فلانی این, عمل رو، این بلا رو سرش آوردن امام حسین هم هی خطبه میخونه هی توضیح میده <تصفيق> هر کی نمیخواد بره هر یه عده میرن یه عده میان عجیبه دقت کنید یه عده میرن یه عده در اول دارن امام حسین میپیوندن یعنی این کاروان به شوی خدا رو در نظر بگیرید یه عده ممکنه دم از خدا میزنن ولی تا به سرمنزل مقصود درزی میریزن یه عده خدا نمیگفتن ولی بین راه ها اومدن به خداییان ملحق شدن امام حسین داره این درس رو به ما میده ببینید چی کار میکنید نکنه یه جوری باشه شما رو جدا کنن و دور بریزن خب اما خود امام حسین علیه السلام این حدیث معروف، هفته قبل شنیدم که حضرت های وحید در, در درس خارجشون در قوم که درس رنوان محرم میخواستن تعطیل کنن این حدیث رو مطرح کردن، این قسمت ادامه‌ی حدیث رویشون مطرح کردن که یکی از افقا من ایرانم نبودم، بارد شدم، یکی از دوستا به من زنگ جد گفت سند این روایت رو، که این روایت رو دیدی؟ گفتم بله تو. گفت، اینجا اینجاشم آیه وحید پیدا کرده. گفتم خیلی عالیه، بگو می‌خوام بنویسم. خیلی جالبه این قسمت ادامهش خب ایشون محققیش که توی روایات و احادیث دیگه معلوم. اصل روایت همه می‌دونید. اینم هم هدیه‌ای باشه پیگی برام جالب بود داره که اصل قضیه که جناب ام سلمه نشسته بود در اتاقی که وحی بر پیغمبر نازل میشه پیغمبر تو اتاق بوده تا اینجاش معروفه اون قسمتی که اخیراً سند ایناش پیدا شده جالبه میخوام عرض کنم پیغمبر فرموده بود وقتی من تو این حجره‌م کسی وارد نشه این یک دست دستور دوم کسی حسین منو نیازور اگر کسی حسین رو آزور این منو متاسف. ام سلمه میگه من در مادر نشستم پیغمبر تو اتاق. امام حسین علیه السلام بچه از راه رسید. علظاهر بچی. دوید بره تو اتاق من جلوشو گرفتم. زد زیر گریه. من ترسیدم راهش کردم. خب پیغمبر فرود گلیش. رفت تو اتاق پیش پیغمبر. لحظاتی بعد دیدم حسین بغل پیغمبر، پیغمبر گریوان شاک زده، قیافه گردالود، اشک ریزان، منقلب داره از اتاق میاد بیرون. من دویدم جلو گفتم نکنم من کوتاهی کردم جلو امام حسین رو نگرفتم پیغمبر ناراحت شده گفتم عذرم و توضیح بدم گفتم یا رسول الله من رفتم جلو حسین بگیرم به گریه افتاد لذا جرأت نکردم فرمود نوام مثلمه برای این ناراحت نیستم حسین تو بغلم بود می‌بوسید و می‌بوییدم جبرائیل گفت میخوای کربلا رو به شون بده اون لحظه حسین من رو نشونده که فریاد میزد حلم ناصره میمشه حالا ایناش معروفه اینجا به بعدش مهمه خیلی جالبه خیلی قشنگه اینجا به بعدش امه سلامه عرض کرد یا رسول الله اینو ما ندیده بودیم که این روایتیشون پیدا کردن فرمودن که ام سلمه عرض کرد یا رسول الله شما دعا کنی خدا اجابت میکنه خب دعا کن خدا عوض کنه این صحنه در تاریخ فغیر بیا به خداوند مقدر دیگه ای بکنه چقدر فهمیده بود امه سلمه چه سوالی پیغمبر چی جواب دار فرمود که امه سلمه حسین من مقامی بناس پیدا کنه جز با این طریق شهادت نمیشه لذا من این دعا رو براش نمی کنم. حالا شاید من نمیدونم، شاید اون لحظه ای که زینب و صلاح الله علیها ها اومد کنار قتلگاه بدن حسین و تو گودال قتلگاه رو کرد به مدینه سلا علیک ملیک سما یا رسول الله هاذا حسین و مرملون به دماغ مغتال اعزا و بنات که اشاره به این قضیه باشه درود بر تو ای رسول خدا سلام ملائکه بر تو ای رسول. این همون حسین است که الان بدنش اوریان روی خاک افتاده